و در که مقاله فوق <تصفيق> در جاره بین‌المللی ایرانشناسی آخر ما امپیریال سوسیال تایمز که به ساعت 6 صبح بیدار می‌یید و وقتی خیلی دفتی باید که دفتی باشیم که پوزی باشیم بازم از او هرمون بخونتو دیده باشیم واقعا عالی باشیم خیلی خیلی خیلی خیلی آمان خیلی ولی اونده می این اشعاری کدید که شما تفتی کردیم باید و این اینده که نا شده که من دارم هم بانه هم شده باید چبا دبی ملیت کیو دبی کورو 45 استاد او گفت: من باشم من می‌خوام به خاطر صداوند راستش این اون اول سيد من بعد اینکه شما با این کارها و این مسائل و این چیزها و این این حوالی آغاز جلسه هفتم درس‌های حافظ در خدمت استاد محمد جعفر محجوب به کلی اول آپریل 1993 با ما شما فرمی کنم آجرامی بازال این مداما مست میده آقا نسیم جهدگی سوریه بله بل بل بیار خاند اینجا مال شما چافه وزیر احمدی حتیب از روح عظیمی به دردن شما کنید این مسئلی شاملی در این باره احمد شاملی تجازه از حالا فرصت این کار نیست حال احمد شاملی شهر خوبیه بدون این چکی این شهرات کاملی هم پیدا کرده مفتکی که پیدا نکردیست این هم بیشت ترجید از این با هم دوسته اینم هم سر جای خود ولی من که در تحصیلی دیوان حافظ باش دارن که اونا سر این کلاف نمیشه مرکت کرد ف... خب، ارز بخونه ایزم مداما مرد میدارد نصیم جدی زوید خرابم میکند هردم و این رو چشم جا پس از چندیش کیباری شبیه یارا رو طبان دیدن شمع دیده افروزین در محراب عبدالویت لازمی می کنم این چهر قشنگی چندین شکی رایی شد یارد توان دیدن که شمع دیده افروزین در محراب عبدالویت باید این محراب من قبلا هست که حرف نزدن اینجا ها, ها حرف دادن ها کلاس یا قبلا سنسل گذاشتیم بلی بس عب و عبه و اینا برد یعنی گمبد و مهراب مهرابه تایل خب بیگه دوباره لازم است که شم در مهراب و در اسلام در مهراب یعنی شم دوشم میکردم برای رسیدن مراد و میگه ما شم یه چشم مونی در مهراب و عبروی تو بیرک روزیم یعنی عبروی تو بعد بل با بگوشم باید لوح بینش را عدید از بعد آن دارم که جان را نسخه ای باشد به نقش خالقه نید باید آز اینجا این یه سر سخت لوح دینش، اون مردم های که کشم سراخ گرده زاهرن سیاهه ولی اصلا هیچی نید این اون عدسی دوربینه که تصدیر از اونجا میاد که نور رو ما از این مردمت کاس می این میره به احساب درونی چشم میرسه این مردمت گوشت کنه میشه درست مثل عدسی دوربین که وقتی نور زیاد باشه این تنگش می کنه خیلی کم باشه زیادتر می که بیشتر نور بگیره اینان همینطور میشه یعنی شب شما اگر عدستی چشم کسی رو چشم, با چشم اون و مردان کشم کسی رو گوشه ها تو تاریکی و به محض اینکه چراحو میزنید می‌بینید من تجربه کردن شخصا کدم چراحو میزنید تا روشن میشه فوری این مردان که جمعش برای لوح دینش یعنی مردان که چشم و مردان چه سیاهی؟ میگه سواد سواد یعنی سیاهی میگه من سیاهی لوحه بینه شد به این دلیل عزیز میدارم واقعا با میدونین که مردم وقتی بخوام بگن یک کسی خیلی عزیز این جهاز هم یعنی من عزیز میگه کشم و از این جهت من خیلی عزیز میدارم که این نصفیت از خال اندوی تو بگم به خال سیاه یه علت این که من این لوحه بینش و سیاهی لوحه بینش عزیز میدارم برای اینکه نسخه خیلی از حال هندوی تو سواد لوحه یه فضلی پیچیده هست من توضیح میدم تو آدم خودشم دفت کنه یک کمی روشنه ولی من توضیح میدم برای اینکه تو کنم که بعضی از دوستان یه ذاره برایشون مشکل باشه سواد دینش بینشتا عزیز از به آن دارم که جان با نسخه باشد نقش خال هندوه تمام بدان دیگر کو یک دیو بین جهان یک سریا سوار پر از ذوع این بهت نشون میدهی که این غزل ارفانیه برای اینکه جاویدن، جهانده جا آرایش میگه این خیلی بکنی خیلی و سباب رو برقه یعنی نقاب نقاب رو از روی تو برده الان بعد کنبالشم باید چیزی میگه که نشون میگه باید این غزل ارفانیه بساهم نه؟ واکه از رسمش فنها از آران برنداری بردشان تا فرو ریزد هزاران جان زهر میگه من با دستباه مسکین این سرگردان بی حاصل من از افسون چشم مصر او از بود من فکر میکنم که اینجور فلط شبیدی خوش سال اول بل سه نوستر این که ذهن من رسید من از افصون به چشمت مست و او از بو که دیسون من و از سه تا نسخه هست الو قذنی تنها نیست دو نسخه بگم اینجا سه و سه, سه شیش چهار ده داخت هست در نسخه هست سه نسخه هست چشمت چشم مست. و محمود قندری و هم دل که حافظ نوست که چشمن است هم چشمنه اما به نظر من محمود میاد از زیر هر دی از زیر جو آفات شهری از زیر تناسب نا باد ابوالصداد مسکین دو سرگردان یه حاصل به هر حال خودش میگه من من که یعنی یعنی شاعر که از عقومشون چشم است دیگه نفس هر چشم حالا اگر اگر باد سبا گرفتاری داشته باشه یعنی سرش این ولی شاعر که دیگه از محشوق جای نمیده فناولی میگه من از افسون چشمت مست و او نمیشه که باد سبا از بون گیسوی محشوق مست باشه ولی عاشق دنبال هر چش این درست به نظر نمیره. من از اپسون چشمت مست و او از بول یکی به نظر من اینطور نیست. الان نصر خودم رو اصلاح میکنم جمیزم چشم حالا نصر قبضیمی که چشمت هم هست بله بفرما بفرما بل عبسون چشمت مست و او از بول یکی حافظ راست زهی حمت زری همت حافظ را نه، زهی همت ببق زهی همت چه حافظ راست ها زهی همت حافظ راست، هفت باشند. زهی همت راست از دنیا و از اوبار نی نیست به چشمش به خاک چه همتی داری؟ جز خاک تو کیت چیز در چهش ماه از من نیامد؟ از این ما ارتفاع دل من در هوایی فروره. اولین آخره. هوایی رو من نیم ساعت زدم اون‌در. میگه که این مردم که چشم؟ لوح بینش هنی مردم میگه صیحه این که برای این عزیز دارم که نمونه از پال هندگی در دو کلمه من یه عزال خوشگل میزرم برای شما زنده ابل بردار بخونه سفاق کنید اجزه چون باید. خب یکی از دوستان دو خونسایید گرامیدی فیره میفروش ازن نردشی چه اینجا؟ چرا چرا دل من در هوای و تعرخش او خور دفتر عالی به پارتی غزلی دل من در هوای من میخونم واسط دلت نمیشکنه خودم واسط میخونم یه دل من در هوا روح و ظر و افت آسوده همچون موج فررو. به روز هندوم زلفش هیچ کس نیست که بر خر باشد او از روح فررو. سیاه نیکبخت از تو که دعای انزور پشو میگه باید همراه و همزانوی فررخ شودتون بید لرزان سر و بستان اگر دیند خد دلجوگ فررخ منشال فررخ ما خد شلان دل بله دلجوست خب بله به ره ساقی شراب و هر قوانی به یاد نرگس جادو فررخ دوتا شد قاماتم چون کمانی زخم پیبسته غم پیوسته همکن پیوسته چون ابروی پی فرح کلک بده چون چوام پیوستگی نداره دوتا شد قاماتم چون تمام زخم غم تو واسینی ولی در ضمن پیوسته صفت ابروی زیبا، در دور حافظم بوده دوتا شد قاماتم چون کمانی زخم پیوسته چون عبروی فر سر رو میدونی؟ پیوسته نید؟ بیتا عبروی چون, چون رو همین؟ همین کلک دیگه اینکه پیوسته نید همواره همیشه در این حال عبروی پیوسته عبرویست که وسطش مثل عبروی مشله عبرو زنده <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> بهتران شد قامت هم هم چون کمانی زقم پیوسته یعنی همواره در این حال ونید عبروی پیوسته هم اینجا کرد کرده چون افرور نسیم مشک تاتاری خجل کرد اینجا این بیت یه ذریعه گیره کچولو داره مشک تاتاری را خجل کرد میخواد بگه نسیم مشک تاتاری خجل کرد چمیم زلف انبر بوی فرخ نمیخواد بگه زلف فرخ از مشک تاتار خجلت کشید که عايشینو میخواد بگه میخواد بگه بوی مشک تا از ذلف و, و کشید حالا نمیدونم خدا آقا باید کجین اگر میل دل هر کس به جاییست است میل دل من سوی فر رو طلا خاطر آنم که باشد تو حافظ چاگی رو فر رو این دو تنها لغتی که با توضیح دادم هندو هندو هم در سعدی هم در حاخت هم جاهایی که معنی پخترین و بیارزشترین غلام کار خاطر اینکه در میونه کفار یه حول خودشون کافرها رو می آوردن غلام تنیز می گرفتن از, از روم می آوردن یعنی بیزانس پسیل میگرفتن، میرفتن، میگرفتن، بعد بختار دختار مردم پسن مردم سن مرزم، فرمشن میعوردن از روم میعوردن، سفید و بلند و زاق و بور و تیفای اروپا از سخلاف، سخلاف معرب اصلاف، یعنی روسیه میعوردن، از حوشه میعوردن، از نواهی مغولستان و اینجاها می آوردن ترک های تنکشم ترک که ترک اصلا منی معشوب در فرسی اینجا هست و هم از هند ولی از میون اینا می ارزشترینشون علام هندی بود به دلیل اینکه به دو دلیل یکی این که بودن درسشون کجی اگه دو که خب بر روی هم نداشتن یک کمی هم خنگم و من این رو باید تایید بکنم خدا منو دور بداره از این حرفای بدتا دن ولی سوالها من در پاکستان بودم و این فرمی که تو شما هر ایلومی رو نیگاه میکنید فرمی که تشمش میدرخشد تا میگه فرید میگه فرزاد که همین هم رو بدبخت کرد اوندار نیست اینجور یعنی نگاه بکنید چشمه همیست چشمه کسفن نمیجوری آدم نگاه بکنید و این بوده به همین دلیل به هر حال هندو پسترین غلام و پسترین کنیز بوده به همین دلیل وقتی کسی میخواست رو به عنوان کمترین خدمتدار معرفی بکنه میگفت من تو هم در اینکه که هم میگم سند داره البته در اسکندرنامه نظامی یه فصل بسیار زیبایی است خون قلعاده زیبا به نام داستان کردن اسکندر با کنیزک چینی و این از زیبا ترین سبراً اسکندرنامه بهترین اثر نظامی است منطقه ای که ما ایرونی اسکندر دوست نداریم. و نه حالا از اول دوست نداشتیم در نتیجه این که آخرین کتاب نظامی است و پخته ترین اثرش ما به چشم قهرمان ملی به اسکندر نمیتونستیم نگاه کنیم اینه که هیچ وقت اسکندرانوی نظام مرتادو در ایران قرار گرفتیم اما مثلا پنجاه تا شهر بهش در هند و پاکستان نهشته که این پخته ترین و زیباترین کار شد. در حال اونجا میگه که یه شب یک کنیزه کچینی بود آمد با, با اسکندر اشتف کردن گزارش چنین میگوند جوهری سخن را به یاهود اسکندری که اسکندر آن شب به مهر تمام به یاد لب دوست پر کرد جام نوشین لبان جام را نوش کرد سه لب جام را گوش کرد کرد کرد بعد میگه که اون کنیزه که چینی آمد و اول شروع کرد به دلبری کردن و از زیبایی خودش صحبت کردن شهرزان که آولم گرفت ای چه گرفت گرفتم که آولم گرفت در گر اون شاه آولم شد از پروری منم شاه خوبان به جان پربری. چه و چه و چه دلها و دزخون چه دلها که زخون خون خوردنم چه خونها که منده از در گردنم چه چه بعد گلافم ولی درد سر میدهم نمکسود خود را اونجگر میدهم بعد آخرش میگه زدور این چنین دلبری ها کنن داغوش جان پربری ها خنن. بعد میگه بعد میگه که مکن ترکی ترک بیلمز دیگه <laughs> <تصفيق> یعنی یک خواهی سرکش ترکی کن ترکی ای میلمان سویی تو که اسکندر فتاب که ترک تو هم این ترک یه هم معنی محشوقه ای ترک من این روز نگوی کجایی یعنی ای محشوق من میگه مکن ترکی ای میل من سویی تو که ترک تو هم بلکه هندو که یعنی محشوق زرپرید مغالی تنگچشک اینا این دوشی زگان تنکشت مثلا لاغر و ذریف و زیوان مثل شاقه ریحان بودن دوبامی که اینا رو تربیت میکردن در مدرسه های مفصلی و انگاه و و سایر مدسارایی ساز زدن و رقصیدن و شطرنج باختن و نرد باختن و بحث کردن و شعر و موسیقی و ساز زدن و همه اینا رو اینا میاموخدن تا رو به قیمت های گذاب نیشوک ده و بسیاری از معادرهای خلافای عبدالتین کنی زفن ترک اینا هست خیلی معروف بودن به دلبری و دلستانی و اینکه نگه که اینکه ترک در عدب فارسی یعنی محشوب اومده تحلیدش اینگه بعد نگه که مثلا ترکی این مجل منصوب تو که ترک تو هم بلک هندوگی تو بیشنی، بلک تو تخت بریم داشت یعنی اینکه قوله خاطر هانم که باشد، تحافظ تحافظ و هندوگی فرقه این فرقه ها نمیشنستیم، بلکه هم اون من ظالمی بودش که این تعلیماتی که به یک صفترها این قبل دیم که رو به عنوان به این صورت درده مثلا خیزه پروش کردن، نه yeah. yeah. yeah. این جماعت الان شما اینجا می دینید yeah. اما با ما یه سمس تهریشون بکارشون که قاسب مثلا نشستی دنبال کاش yeah. الان یه خانم خانم زند یه پروشگاه داره اما کار اصلیش اشتغال اصلی زندش نید اینجا این پروشگاه برای گزاران زندگیش ولی این جماعت چینی و ژاپنی و این تیپای آسیا جمعون چربه اینجوری نیستن حرفه اون شغلی که بهشون میاموزن دنبال اون کارن که برن یا رو میگرشنن میعوردن خیلی ببخشون هیچ کاری از این بدتر نیست یه آدم رو گیرن تو بازار به مثل خر بفشون این به یک صورتی قابل تحمل الان برای ما نیست ما از تصبرش نمیتونیم دلیت میعوردن و میدید می که برای همیشه دیگه رابطش از اون دنیا اونجاش قرد شده تمام شده و یکی و تا نبودن یه سال دو سالم نبود 100 سال بود، یه بیس سال بود، سال که میدونست قضیه امید این که دیگه برگشت داشته باشه اصلا وجود نده بعد تسلیم رو بسر نمیشش و سای میکرد به بهترین صورتی اونجا خود را از آب درگیش و میکرد بب اعرض کنم که همین این مسئله هم هست که حالا ما اینا رو یه حالا بگیم بعد بود بود بدی اخوک بدی اتفاق افتاده و تموم شده و رفته ما الان خوب میتونیم بگیم بس اما دیگه انتقاد ما نمیتونیم بکنیم چون بحث ما رایج روزگار بود وقتی میخوایم فقط میتونیم اینه که اینا چیکار میکردن من چجوری بوده، وعدهشون چجوری بوده، تعقیباتشون چجوری بوده چه کار اینطحالا فرض کنیم حالا یکی از شکل که من میتونم بگم اینه که در روم قدیم برداهه به شغل ب... به جای عصد یا گاب بوده اصلا می حالا این چازده بوده مهم است دانشمند بوده اصلا مهم است کاری که از اون می خواستن کار یا عصد در اسلام یه قدری شایدم چون هزار سال گذشته بود هزار دیویست سال، پونست سال گذاشته بود، ذهنها یه وسیفر شده بود خیلی اگه بابایی هرفهی ولده کاری میتونه بکنه و پول بیشتری میتونه در روی استفاده اولاق ازش کرد بعد برسر باید تجارت تاجر و همین کارو میکردن یکی از کارهایی که در اسلام هست مکاتبه مکاتبه باید از اینه که بنده و عربا بشه بایده مذاکره میشد رو افتا من چند خریدی میگفت مثلا هزار کنم و خیلی خوب من اجازه 500 تومان به ازارم بدم ماه باعث یعنی ماهیانه مایه 300 تومان مایه 100 تومان هرچقدر تا این پولام خاموش من تو را از پولام بفهم من ناجی ولی دارم یا حلبی سازی بلدم یا تجارت بلدم یا هر کاری یا ساز خوب می‌زنم اجازه بدهنگ برم کار خودم بکنم خرج خودم میخورم. این مایه 100 تومان 200 هم که میرم تا پورم تموم شد وقتی قیمتم تموم شد تو پرداختم یک آزاد و به این ترتیب بسیار عمل می کردن. حتی یک ضربل مثل هست اینگه مکاتب یعنی ای که مکاتبه کرده بنده ساعتی وقتی که یک دینار از پولش بابی نده درست هم هست که این قرار هست که تا روزی که آخری قیمتش بپردازه آزاد کش بنابراین تا دینار آخر تاها هست این عبده نمیشه که نصفی بنده باشی نصفی نباشه که نمیشه که این درسته کاملا ارزاره قروبی صحیح میده المکاتب و عبدون حتی بقیه لهو درهمه مکاتب بنده ساخی یک درهمه از پاقی نده و خیلی درهمه داد و کراهی بسیار و مسائل بسیار و راه بسیار برای آزاد کردن بنده در جمله اینکه که آدم متمکن یه روزش رو خورد بعد یه بنده آزاد کن اینا به نفر خودشون میدونستن و بعد اینا همه در ساختن حکومت اسلامی اینا پایه های محکم بودن این بنده های آزاد شده و خب راه درستی بود حالا تازه اصلش غلط نیست اما محقا این رو ها با باید بگم که کتاب خیلی هست و تاسفه که در حوضه های علمیه بعد از این که بندگی و بند خریدن و بنده فروفن نیست دیگه این فصول مربوط به بند خریدن و بند فروفن بباقیتش نمیخونه و این اشکالش اینی که نه یه بحث تاریخی دوره کار مهمی رو اصلا یه شخوار ازش میگن این چون مورد استفاده و نیست چون آقای این دنبال کاری هستن که استفاده عملی داشته باشد شک که بین سه و چهار و نجاست و غلیله و کسیده و متوسطه و این صحبتها اینا میان از آقا می‌پرسن هره قولم پرد قولم پروک این استفاده علمی داره که شوستد سال بیش که میگه به من چه اون کمال اونا روشن فکرها رو نمیدونم معلی علمی که واقعی اصلا کت که از امریکا و اونجا برگشتن اونا هم دنبال نبودن درنچه به کلی اصلا شما الان ده سفر صفحه راجب سابقه بردداری از اسلام به اینکه رفتار اینا چی بوده؟ از روز اول تا روز آخر نه. این درست نیست ای کاش آدم نیست. یکی از همین بچه که اینجا درس میکنه رسالش رو همین بگیره که دنبال بکن که این در طول این مدت کارهای قره های رفتار این مردم و مسلمون به هر حال با این دندهت چی بوده با که من میدونم این است که بسیار از اینا وقتی یک آزاد چون کار نمیرفتن از خونه هر بچه یاد اما کجا بریم من اصلا شما برای کردیم کنیم خونه بودیم سندگی من هم بوده سندگی کردیم خوب بودیم آزو خانواد رو میسر کنجا بریم ما این خیلی تخوت میکنه با کسی که با شلاغ میبردنش پارو بزن این قرآن پارو یا میابردن اینجا برای مزاره پنفی الاخر سر ندارم درجه الان اینم من قصد انتقاد ندارم برای این که اونم اطلاع درستی ازش ندارم ایش بودمشون افتلا ندارم اما این مبحث پیشیده دقیقی است که خیلی جای بحث و گفته بوده به بخش این عوض حافظ کندن من دست چونم گرمی شد به رضا مثل به اکرانیزیت به به بله بله بوده بطمئن دوست و حافظ بوده آشنا بوده چه بوده نمیتونم در حال گوشه خاطر خاجه و جمال اونو ظاهرن میلی داشت نه <تصفيق> هلی که عشق اون شما خونه دی پیره فروش دی پیره میپروش که ذکر داشته خراب میسو خمه دل به گفتم به باز میدهدم باده نامونن گفتا باز دو زیان ما یک خواهد این در باز این او در توف معروض قانداری و اون گفت اون استی قزمنی به باد میدهدم شده به باد میدهات هم اون قلعه چاپیه گفتم به باد میدهدم چه هم وجودی این تو نه با این که رو این چیز ولی این غلط در رفته ارزش گفتم به باب می‌دهدن بازه ناموننگ اون دو شاید دکتر فرختی برافر درست کرده باش کنم که نسوی شد آقای خوروشتایی نمی‌رون در تحریف روش کردن؟ بله، بله، بله، نمی‌دونم نمی‌دونم، منم خواه ندونم که گفتم به باب می‌دهدن بازه ناموننگ که اینجا ننگ و نامه، مهم نیست، گفتم قبول کن، سخن و هرچه باید باب سود و زیان مایه که خواهد شدن زده این مسئله خیلی مهمه است مسئلهی که ما توجه نداریم ما اگر توجه داشتیم که از سفر عالم عمر ما از اول زندگی اون تا میمیم بیش از عمر یه که میپره به یک لحظه نابود میشه نیست خیلی این معنیشی نیست که بگیریم بخوابیم دروش شما باید تلاشت خودمون بکنیم ولی در زمین اگه اینه بدونیم لعقل این وعده مثل گرد هم بگره نمیداریم یه سود و زیان و مایتو خواهد شدن به دست از بحر این ما الکمگین نباشو شاد موضوع باشه اگه پولید از پاروال رفت هوا ورد نداره، خبری نیست، هوایی نیست، بذاری و بری همچنین اگر هم که نداشتی و ناراحت بودی و گرفتا، بازم ناراحت نباشه میگه که سعدی میگه، بلی، به یک حرکت از زمانه خورسند که قصیده یه داره، در دار محت شمت دین سا دیوان اونجا میگه، میگه که یک خود از وضع شکل می میان یه آن عرصه شیراز تا به چند پیاده باشم و دیگر پیادگان پرزین تو بید بون که تنها بر شود به پنجه سال به پنج روز به والاش بر شود گرفتین که دو میره؟ یه هفته میره برای کنست داری چه بوده؟ باید بلی به یک حرکت از زمان خورسنده که روزگار به سر میرود به شدت و لین یعنی چه سخت باشه چه نرم باشه و هر حال تموم باشه پار چه دیدی از کم و شایی مجزرد این سا بود هم که پار نمان حسن تو داگم به این قرار نمانت مستوط و جاهید در کمار نمان بس ارز کنم که اما چیز بسیار مهم مشینه با دست به دست باش اگر دل نهی به ایک حقیقتا اون که ما ها یه چه اگه یه ذره درست بکنی یا اگه به هیچ رس باری به دستی کجا این تیکه حافظی خیلی قطعاً چنیدید که حضیز تو در داشت چه داشت یا قالچه هم بود هزت باید رو عرض می‌کرمی‌دن باید رو تخته‌یشون بر می و میبرد. من حسابم کردم گفتم که در یک روز حضرت از دماون تشمیم بردن به بابل یعنی کشور عراق خیلی و سرعت سیر به ایشان فالیچه ایشان در حدود سرعت تیاره های ملکی و اون حدود به سرعت بلکه برای قدیم سرعت خیلی عظیمی بوده برای اینکه هزاران سال دو هزار سال بشر هیچ سرعتی بیش از چهل کیلومتر، یعنی 25 مایل در ساعت ندیده بود و اون هم سرعت تیز تکی بود که یک ساعت بتازن سر منزل اوضش میکنن اگه نه میبورید چل، چل گیلومتر بی بنابراین تصور این که صبح از دنهاوند دادن بلند شد و عصری بغداد باشه این خیلی چیز برحال اون تو دره خالیچی عزیز تولمونی سرعت تعین کردن این مقداره که عضلت صبح بلند میشودن از دنهاوند و عصری در بابل بودن بله حالا میگه تخت با باد میرفت درست در حال به باد رفتن یعنی چی؟ معنی داغم شدن از نیرفتن این هر دوتها رو اینجا برورداری کرده میگه بادت به دخت باشر از دل نهی به هیچ کجا در معرضی که تخت سلیمان دارد به باد تخت سلیمان را به باد یه معنیش اینه که تخت سلیمان با باد حرکت کرد و بمینی که تخت سلیمان فناش شد حافظ از پند حکیمان ملالت هست یکی از خصوصیات حافظ این است که یا به در میگه دیوار گوش یا اصلا اون که به دیگرون بگه به دیگرون خودش میکنه دوستی من دارم سیروس آموزگار رو زمانگار قدیمی درجه یک بسیار قلم خود این یه وقت در فاریس فهم میگفتش که من یه مدتی تجارت میکردم و با یهودی معامله میکردم اینا این جون من رو به لبم میرسید برای یعشه و سننا رو به حدی که سری من رو میتوه و بعد حالا میزوند بازی این که شده شد البته آدم های بسیار درست قولی بودن و اون چه حساب شده بود و کتاب شده بود سر لحظه درست میکرد اما میگوه این وسط این دوگونداری ها و اینها برای اینکه طرف رو به الاخره که این رئیس عابده و اینا هم چیز میگوه این مزداری به خود خوش میکنن که من پدر سخته سوخته پلان پلان شده من باره بگو درمچی میکنم باره بوشم طرفه که سختی میکنه اینا ولی خب خود به خودش پرش میداد برای اینکه طرف ساعت خورشید بزنی، هم. حافظ به خودش پنگیم، حافظ گرسته پن در اکیمان ملالات است، پوته بدنیم به سرکام برتر است. اینو به خودش میگه عینه، عینه. <تصفح> تاجره یهودی می‌ره که طرف بفهم؟ خب، نووک شما رسید خانم میتوند. شراب و عش نهانچیز کاره میگون یا. درستتون گرفون کردیم؟ نه، باید. بخونم. شراب و عش نهانچیز کاره میگونی را. هرچه باد آبا. گرفت به جلد بگوشا. گرفت به جلد بگوشا و چیزی که میشوندش میگیرند نداشته به انقلاب که عجب اجرا میکنیم. از این کار را انجام می‌دهیم، می‌توانیم این کار را اگر این کار را انجام می‌دهیم، می‌توانیم این کار را انجام دهیم. اگر این کار را انجام به هسته سنده شیرین تنوید می بینم که لاله می از سونی مگر که لاله مگر که لاله بدانه بی مگر که بی که دومه می که بیا بیا که زمین خراف شدیم مگر بسید رسیمی به گنجی در این پر اجازت به سفر نسیم نسیم داد رسلا و آد رسناداد قدر نگیمی تو چند که بستن برابیشن پر دلشاد قدر که تراب ترب بدوشن شعر بسیار غشنگیست ارز کنم که بیت اولش توضیح زیادی نداره شراب نه هم چیز کار دی بنیاد در بیت دو گره ز دل بگوشن و سفه یافت مکن که فکر هیچ مهندس چنین گره یعنی گره سفه رو ندوشن حالا اون طرف یک گره گوشادن داره گره رو دل بگوشد این طرف هم یک گره گوشادن دیگه داره که فکر هیچ مهندس گره نگوشد ولی از این گره گوشادن و اون گره گوشادن خیلی فاصله داره اولی میشه اونهاد نکن اونهاد ناراحت نباش فکر با سازگاری دنیا رو نکن هیچ مهندسی، هیچ کسی تا کنون نتونسته این زمانه رو رحم کنه بنابراین برایتر میگه تو با اون کنار رو یاد اون با تو کنار رو گره زدل بگوشم و یا یاد بکن چرا؟ که فکر هیچ مهندس چنین این گره نگوشم زمانه عجب مدار که چقدر از این فسانه هزاران هزار دارد یاد می‌دونید که روزگار حافظ روزگار فتن‌ها و آسوم‌ها و پشت‌پشت‌ها خود دائم‌ان گرفتاری هست خود حافظ پنگ شیخ رو شاید اول جبونیش شیخ ابو اسحاق بود بعد مبارز الدین بود بعد شاید که بانک 24 سال و شاید شجاع گرفت بعد از مردم شاه شاه منصور بود سلطان زین و بود شاه یا یه و تیمور تیمون اینا دائم چهر شیراز همه دنیای اون روز دائمان دست باشد اتن و آشوب یعنی یک لحظه آتشبه و شیدی تعجب نفرمایید در تمام تاریخ ما تا اونجا که من خبردم لعقل تاریخ برای از اسلام دوسته که دوره پنجاه ساله یه آسایش آرامش یکی در بوده 56 شهر سال دوره شاهباست یکی که پنجاه سال دوره فتح و ناسه شاه رو هم که البته به قیمت از درست هفتن هی دشته عرق تموم شد ولی مردم چیز نداشتن مردم نون خودتون رو کسی این مردم فغیر و هرده کارت به دفت از تو خونه وارد آور نمیشتن بذارن دیوار تو خوشنش یکی هم در دوره پهلا سردوره سلجوگیان و همسابیدان شاید بعضی دوره ها اینجوری ولی اصلا امپراتوریشون چیز عظیمی بود در حال اونام گرفتاری های عظیم و عجیب و غریب از قبیله نمیدونم ملاهده و بساعت خیلی گرفتاری ها داشتن به هر جهت اون که میتونم الان بگم این است که از این هزار سال بعد از اسلام هزار سالشو مردم ایرون گرفتار همین دستی بودن تا دارینی نواره میگه باید عادت کنیم بسه انقلاب زمانه عجب بدا که چرخ از این فسانه اگر اگر پنجه شست سال در آسایش آرام ازیستی از اون تعجب کن یکی از دوستان طبیعی هم من که تعجب نیست که آدم ها زندگی میکنن تحجب نیست که آدم ها تو نمیمیرن هر لحسی. برای اینکه دو هزار تا عامل پنگ هزار تا عامل باید با هم تحبیق بکنه زنده باشی یکی شگی کرد شد بنابراین اون چه مهمه اینکه تو زنده است، نه اینکه تو مرده اینا همین به شرط عدد قده به خلاف نمیدونم چند نفر اینجا ما لطهرون نفر ما لجای دیگه حال کننم که ما قده و خونده یا انگاهیی سر زید خط مجلس اینطور نیست در شیراز همون جامع سوچی که خراب بردن که به یک وحده میتونستن اینو راحت بناشن یه قده میشه هر که هده بیش سان که ترکیبش سکافه افتر جمشیت و بهمنست و اون پادشاهان به اون بزرگی خاک شدن و خاکشون گرفتن قده بدلچینی بوده سفار بوده یه این خاک تو چه میدونی؟ درست اینه همون که این خوزه جوان عاشق زاریده درست همینه قدر قده کاسش. تو چه میدونه خاکی کیه؟ قده شد و عدد گیر زمک تفکیب و سکاسه یه سر جمشی وحمن از تو خوبا چه هست که کابوس و کیب کجا رفتن؟ چه واقع است که چون رفت تخت جمع بر اینجا یک نکته مهم هست او آمیختگی جمع چیده و سلیمان تا اونجا که میدونیم سلیمانه که تختش بر میره با جمشید رو حد به اکثر اطلاعی که داریم این است که جمشید دستور دارد به خرد کیانی یکی تا چه که ما یه به دو در اندر نشاخت یعنی نشون که دی دید بردارد همیدون به گردون بردارد که خرشید تاوان نیام نهوام نشسته برو شاه فرمان جمشید بر گو هر اخشان زند بران روز دار روز نو ها اون که ما می این است که اون روز می دیوان تخت جواب نشان جمشید رو بردن به آسمان ایچه خیلی صحبتی از رفتنش نیست بردن به آسمان و اون روز جمشید مثل خورشید برای اینکه یعنی جم تابناک شید بر آقای جمشید جم شید یعنی جم تابناک مثل خورشید یعنی خور تابناک تو, جا... تو خورشید تابان میان هوا نشسته بر اون تنفیم تاب... ولی از خیلی قدیم احتمالا نه بلکه فتحا پیش از اسلام پسته های جمشید و پسته های سلیمان با هم قاطی شده. بسیاری شاعران میگن جمشید مرادش سلیمانه میگن سلیمان مرادش جمشید این افسانه ها با هم قاطی شده از جمله همین این تخت جمع با درست همون است که تخت سلیمان قبلا تو غزل قبلی بود گفتم که برباد میره دو معنی میده یکی روی می که روی باد حرکت میکنه دوم که روی باد میره نابود میشه اینم همونه چه هست که کابوس و کیک کجا رفتن چه واقع فرم که چون رفت سخت جمع برباد یکی این است که چجور تحت جمسید رو باد حرکت میکرد یکی هم اینکه جمسید با اون کتبه و اون دفتر آخر جمسید افتاد میدونید که جمشیز رو بعد زحاک بر ضدش قیام کرد و گفتن پره ایزدی از اون گریخت و 100 سال متواری بود در کوب یاوان درافق زحاکیان رو گرفتن و آوردن و با عرب دونیمش کردن این هاست که میگه که چی میدونه که چجور دخته جمشیز رو داد رست اونی از به این که حسنات لب شیرین هنوز می‌بینم که لاله میدمد از خون دیده خرپرد روشن می‌دهد بعد بیت بحدیجی به نظر من بهترین بیت غزل این بیته مگر که لاله بدانست بیوفایی می می دهد می‌گه نسید این که لاله بیوفایی این دنیا رو می‌دونست حالا که لاله که چیزی ندهد، عقلی اینو به ما بره مگر که لالب بدانست بیوفایی در کتاب زادو بشد جامعه میز کفمن ها یه بیوفایی دنیا رو نیمزنه که از وقت زایده شد تا مرد این جامعه از دست ندارد اگر که خیلی زیباست مگر که, زیبا. که لالب بدانست بیوفایی در کتاب زادو بشد جامعه میز کفمن ها بیا بیا که زمانی زمینی خراب شد، مگر رسیم به گنجی در این خراب آباد باز اینجا یه خیره مهم هست اولا او این است که گنج میگن در خراب هست گنج در میران اینکه میگه ما خودمون خراب کنیم تا به گنج بست اینجه اینکه این میگ، این عرفان یعنی میگه که ما در اون حال جذبه ایزدی که آدم برسه حال فناس یعنی خودش رو در بین نمیدینه وقتی آدم وجود خودشو خاصهای خودش خودشو گرفتایی مادی خودشو ندید در بین این وقتشون که این آینه حقیقت در اون تجلی کنه و نوری درش دلش کتابه که اون گنج یعنی بیا بیا می در اصطلاح ارپانی حالات جذبه ایست که به آرز در اچه سیل و سلوک روخه اینجا بیا بیا که زمانی زمه خراب شدیم مگر مگر یه معنی که الان نیست به در قدیم بوده قید تردیده مگر یعنی شاید در اشتایه یه قدیم مگر بمینی شاید و اگر بمینی یا به کار و الان مستحول می الان مگر قید استثنان می گیم همه آمدن مگر حسین ولی مگر رسیم به شاید برسیم به گنجی زید سردی بله بله اول داستان روز تم و سهران که اگر کون بابی براقید گنج یا کنج هر دو خوندن به خواه کفکن از نارسید اگر سال گنج اگر تون بابی برای از گنج به خواه کفکن از نارسید به ترنج ستمکار خانیمش ار داگگر هنرمن بویمش عربی اونر یعنی اگر بایدی بیاد و ترنج نارسیدی رو به خواهد بیافتنه حویی که اشارش به جوان مجدن شهران بیار یا یک بیاد و نارس پرنج نارسه رو خواهد یکنه یعنی بگیم که این به تنکار یاد داد این یاد می اگر مرگ داد از بیداد چیست داد این همه پانگ فریاد دم مرگ یکی از اینا رفت بس که این چه داشته باید بگیدی سرم که نیمه داها پیری سبب دم مار چون آفشه و ناک نداغت به بود همه می رو. اگر من یا اول داستان و سمسوران برهاد مگر کلاله من که خوندن نمی دهند می دهند اجازات من و تیر ففر حقیقت سفر دهند که حافظ احل در درون درون خلاف که که از یه ولی خب سعزی تمام دنیا رو گشته که ایچی اونجایی که نگشته قصده شو گفته که من سومنات رفتم و سکار کردم یا رو بشتم و به جامعه کاشخر رفتم مرومی شبته بوشه به سر شنیده خود شد کدش در رول قهرمان ولی آقا سعید نمیده هم اجازت خراب و سفر نسیم باد مسلاح و آقا سعلا به طور کلی اسم آمنه این اونجایی که شهر آماده میکردن برای اینکه مردم برن نماز بکن یا در روزهای جمعه برای نماز جمعه یا مهمتر در مواقع فختی و فنگی مثل روزگاه فختی خوش خوشتادی که yeah. از okay. اینجا همین کارهایی که عرض کردن میکردن. و این که عردشگاه در ظلم به غیر شیرازی یا بگم که مردم شیراز بسیار مردم میرون از خونن هست میگن بریم سهرا و این مهم نیست که این عرقور باشه نباشه جمون باشه پیر باشه زاهد باشه نمازخون باشه اصلا تمامشون چون واقعا هم از نوروز و سهرای بسیار سفر با قشنگی داره تمام مردم میرن بیرون برای گشتن که عرب خوره عرب شو بخورون سازونی ساز چه میزانیم با اهل زن بچه هست چایش درم میکنیم زن بچه‌اش هست میان بیرون سعدی میگه که بیا که وقت باهار هست تا من تو به هم به دیگران نگذاریم باه یعنی نداریم که دیگران برن نام و جایی درخمون که برای اونقدر بلبلان جهان جوان صد و یاران به اشمن چستن به ساوت سبزه لگت کوب شد به پای نشان سپسی ها رفا آمی برست برشت بیرون میرفتن و مسلا که از گردشتها های مهم مردم شیراز بین بیگه نمیرهن اجازت و و سفر نخصیم باگ مسلا و آب روی ناب آب قده مگیر مگر به ناله چنگی مگر که گفتم جاید استثناز اینجا حدات حصره جاید حصره و حصر اصلا برای تأکید کلام میاد حصره باید از اینه یه رفاقهای فرم شابی از این برس که امشت چی میگم که شلوکه ها بخوریم میگه هایان شلوکه حالا زن پخشت گام برو. حالا یک از من که نمی‌خواد چی می‌خوری. گفتم من یک نمی‌خورم، مگر چی رو که با؟ این با جامرأ تابیفانشیه. این است که اگه تازه یجیادی داری، اصلا نیه. ما اون نمی‌خوره. فقط میاد. اینوش میان هاستره و مطلبش تخت. یه مگیر تو حافظ مگیر حافظ. مگر به یعنی نبود قده. این حسره در, در معانی ویان بهش یعنی هست برای تحقیم حسین و ساده بس بس نه همون چنگ ساز ناله چنگ قده مگیر میگه عرق و راست میگه عرق و ساز و زر اون چیزی همرایش بشه بی خودی کردن تو عرق و چی میشه نیست به نیبالا باید هم به دمروه مگر به ناله چنگ که باستان بر عبریشم طرف دلشاد. عبریشم این سازهای زهی که ابریشم تاره به این نازکی بسیار محکمه با باید که اگه بخواد یه عبریشم نازوک رو دست پاره کنید دست شما رو میبوره می ولی خودش باره نمیشه بسیار محکمه قدیم که نمتونی مثلا رو به این صورت روی سازهای زهی ببندن عبریشم میبسته سازهای بهم رو با روده درست میکردیم که الان همون روده هست و ساعتهای زیر رو با باعث عبریشم مولانا میگه با عشق بازی از سرگید یک دو عبریشم های گروتر گید دو دوتا نوت دو پایین بده مگیر سوحافظ مگر به ناله چند که بستن بر عبریشم ترعب کل رو بر عبریشم ترعب بستن اینا اجازه بدید مثلاً گرفتاری اخلاقی دارم که دارم کار this کلمه ای که در آخر غزل همه جا تکرار میشه اینوش میان ردی از اول غزل تا آخر غزل میگه که باد تکرار شه اینوش میان ردی و این ردی یک کلمه نیست دو سه کلمه از این که همه بیتا تکرار یا مثلا ماریز هم بد نیستیم یا روی مولیان آیت همین یاد یار مهربان آیت همین اون که تکرار میشه میشه اون که تکرار نمیشه که اینجا در همین غزل اول باد بعد بامداز بعد یاد بعد شاد بعد میگوشاد اونو بهش میگن قافیه بیش از ودی قافیه هم بعد حد اقل حد اقل یک حرف و یک حرکت مشترک داشته بشه در آخر اصلا زد بد دد یه عدره یه دار درست اما زد با شد قافیه نمیشه. اگه بیشتر داشت چه میتر اگه ولی یه کمتر از این ممکن است. به همین دلیل وقتی بعضی ها میگن که سخن رو با منون قافیه کردن خب تنگی خافیه بود شده ابدا تنگی خافیه نمید قلطه مسئله این از که سخن رو در قدیم میگفتن سخون و سخون رو و با مخون خافیه کردن خب ارز کنم که دو آگهی زیار رو سفر کرد رو باد من نیز دل باد بهم و هرچه باد باد باشم کارم بدن بسید شام همداز خود کنم هر شام برق لامه و برق لامه یعنی برق ضمن در برق باز معنیش در ما و قدیم برق کرده در قدیم اون چیزی که روحاسمون بود بشه گفتن و برق و برق ادامه دار نداشتیم اصلا آن الکتریسیته رو در کشورهای عربی میگن کهرببا اون چیز الکتریکی در کرببا و چیزهایی که اون دوست نا و بار الکتریکی زیاد شرکت آقا میگن شرکت تقبا و ما ولی ما برق رو که اصلا مع تخلیه الکتریکی نه جریان به معنی برگ گرفتی خیلی مهم نیست ولی به هر حال برق اصلا معنی یعنی فارسی برگ می شده درخش که فارسی سائقه و سادوین می شده آز و فارسی رعد رعد که دوستان میدونن چیه صدای همون برگ می شده تندر. حالا در انگلیسی هم کلمه تندر رو گرفتم گروه که به کار میده. میده من که علم ندارم عرض کنم که تندر یعنی صدای بر و میدونید که نور سانیهی هزار کیلومتر راحته می کنه صدا سانیهی 340 و اون سی هزار هزار متر این سیصد برق و راعت هر یک لحظه وجود میان ما برقا میبینیم یه دقیقه بعد صدای صدایشون بوشه اگرم دور دست باشه اصلا نمیرسیم صدایشون این, این دوتا یک برقا درخش هست و آزدرخش هست و تندر ما از اون کلمه گرفتیم برگو ولی عربا میگن که عرب ها اینو هم برگ نمیکن از اون کلمه گرفتیم ولی برگ یک لحظه بیشتر نیست اینکه ما بریم که مدابمه اینو اینو باید در فرسی گرفیم اینو اصل معنی برگ نمیکن بر چین طره ی تو طره به معنی چین و شکن زر این کنگره های سر کاخ ها رو هم بهش میگن تره فحریان تو شب میگه که عاشقی هست به دیدار محشوق از بالا قصر میگه هم چون شکن تره کاخ تره کاخ یعنی هم کنگره های کاخ بنابراین تره یعنی چین شکن زود بر چین تره تو دل بیحفاظ من بیحفاظ یعنی بیملاحظه یعنی بیپرواه وعظ یا بیحفاظ منی آدم اینکه از گناه و اینا هم نداره یعنی گناهکار روز خود بیابرو و بیپرواه میدن ولی اینجا یعنی بیپرواه است در چی نطور؟ هست حفظه دیگه از همونه با منطقه میشه شمعنه گیری در چین طره تو دلت بیحفاظ من هرگز نگوخ مسکن محلوب یاد میگه دل من رفت به چین طره زلط تو اونجا موند اصلا یادش رفت کجا ماله کی بود چه تو بود این, این, این مزمون حافظ بارها میگه کسی یادش نیست یه نزیدین بگه وہ بسیار معروف ہیں نا تو ہت میری به دلے میری سینے زور سے معشوق واسہ نہ میاں کہتے چھم وہ ہنشرہ اخی اخی همین ها اینه به تماشاگه ظلفش دل حافظ روزی شد که باز آید جاوید گرفتا هر که شد محرم دل در حرم یا باید که این کار مدامه در این کار وقتی تماشاگه ظلفش دل حافظ روزی شد که باز آید بر مقیم ظلفتو شد دل که خوش ثبابی خزان غریب و خبر نمی آخیم قد بلنده تا به بر نمی ایرم درست بخت و مرادم به بر نمی آخیم باستم حکایت دل هست با نسیم سهر. ولی بخت من امشب نمی آخیم به شست گشادم نزاد دعا از آن می آمه یکی کارگرد می آمه خام از تو بر می, می آمه من در چین تو ره تو زرده امروز خدرپنده اینجا یه نقطه یه هست امروز خدرپنده عزیزان چناخم یارب روان ناصح ما یه نقطه هست همین بیج نشون میده که یعنی حافظ که هزار بران پند داده بلی من گوش نکردن تازه امروز فهمیدم امروز که شوزی که بد بخشدن این داره اینه میگید درسته امروز قدرپنده عزیزان شناتن اون چه روزیه روزی که تو تله افته یه وقتی من اون اقبال حباس اقبال آشترانی مجلی یادگاه مینوشت موضوعی رو به مسابقه مص... می کردن چه گفت یعنی نظرهایی کرد از بزده پروژه مطلبی که قبل از این کسی می گفت اصلا مستخارش می کردن که های پند و اندر به درد می یا نه چون قبل از او کتاب ها که بسیار در بوره پند و نوشته می زدم ها رو خطی که میرم با همه اینا که بود همه اون با همه یعنی مثل تیری باشه که درست به هدف وقت یک کلمه حرف زندگی آدم رو میکنه یه وقت دو هزار تا او از او خشنگر بهش میگن اصلا من خودم که از این یاد دارم. سال تحصیلیه 25-26 سال سه سی سیاسی بودن در دانش او و سال 25 چهری بر 25 و داشتیم که اگر زنده داشت اون بیشتر از بود اگر 15 اش خداش دکتر محسن عزیزی شبانه کسی بود که اثر بسیار مهم در زندگی من داشت. ایش از مصداقی خیلی خوبی داشت که علوم سیاسی درس می‌داد، دو تا درس هم داشت، جغرافیا اقتصادی و تاریخ حوادثی. اما سر رو گفتش که ما اینجا علوم سیاسی درس می‌گیم، من تاریخ حوادثی درسیدم اولا دوستان تو های پارس های پیارس تو من هر سر دوزه عوض میکنم با به هوای اینکه مالی پارس هایی رو بچه ها بیگیرن به خوننگان اکتا تو نباشی میگه گفتش که دانشی اولوم سیاسی باید در اقل زبون حالا سال 25 25 چند 70 65 سال هلا 72 اون ما اگر اون اصول و سیاست‌ها سن دانشورم سیاسی باید دو تا زبون، یا الله اعلی یه زبونه فرنگی بده. اگر نه، سن که به واسه. وقتی خودی حساب کردی. سلام روز و حرفای استادمون عقیده داشتیم یعنی فکر کردیم که این درس می‌گیر هرچند که می وحی منزله. من هم اونجا تصمیم گرفتم که رساله بخواب، بلیسانس هم یه رساله داشتی. من اونت شهرس هفتاد تا, تا از یه زبانی اوش یه ایچی می نوشتیم تصمیم گردم رساله هم ترجمه میدیم تو یک پور سواد داشتم هسته چهار ساعت فرانسی تو چه قد آدم یاد میدن من از فرانسیم خوب بود همچنه نمره خوب میگرستم ولی نمره خوب تا چی؟ یه صفحات ب بکردم من پی اینو بتنم میمالم اینش از صفه ده لغت در هر صفحه داشته صد. صد تا لغت داشته لغت من پی این که شیزار لغت در بیارم بیستیونه تن خودم باید. و این برای این که بخونم بخوندن در باید بخونم 600 هر سفر رو صد بخونم اینشه اینم پیش بتنم باییم که امتحانم تاهم شد دو واقع مرخصی گیرستم از اداره تو اداره توانیمسیکانی از این مثلا تو خونه درم بختن به درمادرم گفتم به هارو من فقط بیریم بذاریم اینجا و پس که او بیام گیم وزنیم زرکی کریم بود نبود باری به هم نشون به اون نشونی که دفعه سه که اون قسمتی که استاد تنگ کرد دفعه سه که شروع کردن به خوندن بیدم من من و چون بحث سیاسی هم بود که مرسی خیلی مشکل عددگینا که نبود و بر روی هم اگه میگرفتید هر صفحهی ست لغت هم نداشت لغت ها تکرار میشهرم چند صفحه اول مثلا صفحه ای ۱۰، ۱۰۰ لغت هاش نداشت و بنده بعد از اون چیز اونو ترجمه کردم ترجمه مزفاقی بود ترجیس و ولی همون باعث شد که من بتونم کتاب به زبان بخونم و بعد هم کتاب ترجمه کنم که اولین کتاب در سال هزار سال 28 چاپ شده در آخر 27 در شده در آخری شده در آخری ترجمه کردم. مرباوی ملشتنگ و برای اول 28 با این به کلی زندگی من دیگر اون کرد همون یک کلمه بعد همون استاد دیدم و بهش گفتم که آه من به شما مدیونم شما این لطفی در حتی من کردیم خدا حرفتش کنه اگه هست گفت که چند تا شاگردش نکنه کلاس گفتم یه هشتتا دو ستایی بودیم گفت دو ستا دا دا چند نفرشون یه چنین تصمیمی گرفتن گفتم حالا استاد من نمیشه و همین تو حال چرا؟ این حرفو که همه زده اون باقی دیگه اون زمینه اون دلشون آماده نبوده برای پنده اینه که حافظ میگه امروز قدر پنده عزیزان شنا یارم روان ناسب ما است و شد اگر کسی طالب پند و طالب دانستن و طالب گرفتن چیزی باشه سعدی میگه مرد باید که گیره در گوش برنوشته از پند بردیگاه رو دیوار رو نوشون یاد میگه دیگه و هم دیگه بگن میفن اونی هم که نیست حال دو هزار رفی بگو شنیدین که اون بابایی که میگفتن که نشسته پند رو بیه کسی بهشو گفت و گفت و گفت بعد دلاخره آقاستان گفت شبه هم میدونی من چلیه مگذ به کلان جایی کار بابام چی موردم امروز قدر فنده عزیزت بله اونجا صورت فنده البته نیست بلی خب چبیل دیگه این اون قسمت بعدی یعنی اون طرف اونجا صحبت پند طرف فاعله و طرف منطعه هر دو باید باشه طبیعیست اون قسمت اون بخش واقع بخش میکنه که هر کسی قابل تربیت نیست فایده نداره این طرف قضیه است که هندی که در آدم میده فقط موقعی اثر میکنه که زمینه طرف حاضر باشه و الا باده هم. خب خون شد، خون شد دلم خیاد تو هر گفتی در چمن بند قبای خونته گل می گوشد باید قبا که که مهم می می که جروش بازی و جامع لباس که جروش بسته است این بر حاجه قدما و اداب پیره ودمون جلوش باز قدیم جلوش بسته و جامع قوا کردن یعنی پاره کردن یخی یعنی لباس جلو باز سر تبدیل کنه به جلو باز حافظ میگه چون گل چون گل از نکحت او جامع قوا کرد بان قبا در ره آن کامت چالا بنابراین وقت قبا هم دوگیبه و اینا نبوده نه برای پیرهن، نه برای جامعه، نه برای قبا بندی بوده هنوزم بعضی خانوها قباشون بند داره می‌بندن. بندی بوده از اون زیر میبستن و تمام قبای به آگیای ما تو چند سال کش در همه دهات همی طور بودیم یه چیز راسته بوده یه اخیه خبای کربوزی راست صاف تا پایین اون کشم بند دیمی بعدم بعد که میخواستن بشینن بند خباشون رو باز میکردن بند خبا رو باز کردن کنایه از راحت کردن و استراحت کردن و نشستن و آسایش کردن دیگه که دل من خون شد هر وقت باد بند خبای گلو باز بند گلو باز یعنی بعد به وصل گل می رسید و من به وصل محشوقم نمی رسیم. یا به هر دلیل دیگه خون شد دلم به یاد تو هر جهتی در چمان بند بوای غنچه گل می شد برای اینکه محشوق رو محشوق یادم و بند غواشی که باز کرد کار درست <تصفيق> یعنی نشسته و میخوان اشترش بشنم دیگه دو ساعتی با هم باشم بله بگو شاید دل ما. بله همین باز همینه بگو شاید بگو شاید بند خواهی نیدر با هم میشین بگو شاید من بقباتا بگو شاید دل من که گوشادی که مرا بود این گوشاد یعنی گوشایش که گوشادی که مرا بود زفهدوی تو هزار تا آجوبات باز کرده برای همون سیستم خودش خون شد درم به یاد تو هرگه که در کمن بند خواهی خونچه گل میگوشه یعنی منم فکر میکردم یه میشه بند خواهی تو رو با کنم من. از دست رفته بود وجود زهید من صبح هم به یه بست تو جان بازد باز بو به معنی میل و است. یه معنی بو, بو که هست بو به معنی میل و آرزوست سعدی میگه به بوی آن که شبیه در حرم بیا سایان هزار با سهلست اگر بکیم آن یعنی به هوای آن که. به میل آن به بوی آن که شبیه در حرم بیا سایان از ار واهیه سخت است اگر به پیمان یاری بدهش جفا آوردن از تو جان بازی دیگر چه طالب که ز ما بار نو با وایو راست تو یعنی به آرزوی ما صبح هم به جونگ وقت تو یعنی به آرزوی وقت تو جان باز داد باد بید آخرم توزیحی نمیخواد حافظ نهاده که تو کامد براورد جانها قدای مردمی نیتونه حافظ خب این غزل دیگر رو شجریان خونده بسیار قشنگ بسیار بسیار زیبا اینم سهر گرامی به خونده این روز بست دوستداران یاد خود بست دوستداران یاد یا خدا یا یا یا <تصفيق> نه راز حافظ که به خونی دراز بشه <تصفيق> راز حافظ راز، راز، راز. تو می بعد از این را بخشه مان به در این را یا نه توضیح میدم بعد از این خیلی مازی نمیشه بیارنه اشکال اصلی اونه بعد از این هم توضیح میدم به همین روز واسط دوستان یاد بروشانه یاد با بانروزگاره یاد با یاد بايد و من مرا تاكي، اين كلامو روز دوستان یاد باد، یاد با یاد با یاد بايد و من مرا تاكي. كاملا استارس. اين گام كنم زا هت يش. خيال ميكندم و البته بسیاری از مواد سمی به طور رفتن یعنی قسمت عمدهش مواد آلکالویدی است و آلکالویده تقریبا همه شده اما معنی این حرف این نیست که هیچ مادده سمی قیده ترش نداره مادده سمی قیده هم وجود داره ولی زهر و تلف میتونستن از قرب اینم میگه از تلفیه کام هم کام مثل زهر شد برای که زهرو در منطقه های تلفی میدونست کام هم از تلفیه فهم. چون زهر گشت کانگ نوش شاد خایران یاد بود اینجا دو سه کلمه هست که باید توست یکی نوشه نوش نوانی شیری نیست یه من این هم که نوش جاند یعنی شیرین باید بر جاند از زبان عرمانی اسم شیرین همون چاهزاده عرمانی آنوشی آنوش همون نوشی یعنی شیرین. درست ترجمه تحت لفظ شیرین. این شیرینی همون تلخی متضاده ما هم کام همون تلخی یکم چون زهر گشت من نوش شاد اینه بهش میگن تضاد یه صحنت شهریست بهش تضاد میگن اون بر فلکی آورده این بر یکی اون طرف قم آورده این طرف میگه شاد پارن. باز توضیح بدم که در قدیم به اصطلاح اینجا که می دادن موقع نوشیدن جام شراب شادی بوده از سلامتی واحد از خود حافظ می آره نوز گفتان بطه فرسا بچه باد فروش شادی روی کسی خور که صفایی داد شواهد متحدد چود سر موقع در کتاب سمک ایجاز هست که تو را شادی رفیقی بخورم یعنی به شادی این که تو با رفیقی تو را شادی خواهری بخورم یعنی با تو عرض خوهری بخورم بنابراین شادکاران یعنی همون به سلامان اما این که ماله این که قدیم میگفتن شادی خوردن اما سلامتی هم یه چیز یه خیلی خیلی انسانی و بسیار مهم داره برای که مشروب الکولی به هر حال سلامتی نمیاره که تا اینجاش روشن کامل بنابرای این یعنی چی؟ که باقا با عرق و شوابش برداره میگه به سلامتی شما باید یه محنی دشته بشی محنی زدش که نمیشی دشته بشی قسطه این که در قبل از انقلاب کبیر زندانی بوده در فنانسی باستی که متاسمان در فارسی از قدیم الایام ترجمه کردن اینو بستیل برای آی و دوتا ال و ای در فنانسی طرفات میشه ای در کی که که فنانسی نمیدونه آلوانی یا ایل برن. بستیل ترجمه که بستیل در حال این زندان زندانه زندانی بوده که هفت کسی رو اونجا دیگه اعتمال بیرون اومدن توش خیلی کم بوده یا میذاشتن با اینجور بخوصه و بمیره جنازه شو بیارن میرون. یا اگر دیدن خیلی طور کشیده نمارد کلکش میتند. و ترتیب کندن شرب این زندانیا این بوده است که اینا یک پتر شراب و یک نون جیوه داشتن شب به شب پشت و مرکی زندانی شب نشسته سه بود و رفقه هاست و گلب تو گل چند و او پکند و هیچ قصد مردن نداشت اصلا و اوش دیدن یارو کرگه وقتی این کارت تکرار میشه سمن که حکومت اینا رو کلکی می کنه شبابشو مسمون می کنه و بابا می و راحت به اولیتیت می فیمنده با حافظ آسالگان سرد سردش بعد زندانی ها فکر کردن که خب این شطور در خونه هر کسی ممکنه بخواه دیگه یعنی ننوشتی رو پیشونه کسی که بنده یا فروح یا مونیکی یا هسند یا فقیق همشب نوبتش هر کدوم ممتنم, ممتنم. آمده فکری کردن تمام شراب جیره های شرابشون ریختن توی یه و بعد یکی بوشتی هاشون پرد یه بوشتی که شراب مصموم بود و مثلا دیویست زندانی اونجا بود اون سمش تبصیل میشد به دیویست و دوزش که دوز مورفل نبود یعنی زیان نمیرسون بعد کنار اینا میخن تو بطری با این کار مطمئن بودن که فردا هیچ کس نخواهد مرد و همون رفتن به سلامتی این قصه سلامتی به سلامتی خوردن از اونجا از بیش از انقلاب گرفته شده و بعد چون چیز امسانی خیلی یعنی کم امسانی خیلی مهم میدشته همه جور رایب ولی قبلا در ایران شادی خوردن بوده نه سلامتی خوردن همجور که می کامم از تلخی یکم چون زهر گشت بانگ نوش شاکاران یا گرچه یاران پارغند از یاد من از من ایشان راه یا، یاد چقدر زیباست این که اونا از یاد من پارغند ولی من هزار پارغ اطلاع در این بند و بلاق چه آن ها هر گزاران با ذه نوشته هر کسی که هر کسی رو انجام عدام کنه انجام با زید. در چه صد روند در چشم مدام زندرود و باق کاران زاینده روده حالا اسمها باق کاران اسم یکی از های بسیار معروف بوده که از دوره صد روغی یعنی از قرن از اواخر قرن پنجام تا قرن هشتان که آب به زندگی میکرده این باق همچون بود میدونید باق رو بلش مانند چیز میگه باق بود که میخواد میدونید که بزرم داغو میشه این جاهای که آبشو خدا میده و همه اینا تبدیل میشه به علفزار، تبدیل میشه به بیشه تو ایران جای جا خوشت هم که آب ندم چیزن میشه ب را خصوصاً درط مواظب 300 400 سال این باغ رو مراقبت کردم و نگهداریش کردم. بعداً باغ فقط باغ سازی با اینکه بهشت به صورت باغ مجسم شده با اسمش شده جننت یعنی باغ ف جن یعنی موجود پینهانی جنه یعنی سفر که آدم پشتش خود شد پینهانی یعنی باقی که پینهانی اینا همه سخاطر کفیات اقلیمی من که کنس گره خشک تفسیده یا به افتاق جه. یک درخت درست سایفکن وسط دیابون باشه مردم و مرغ و مره جمع شد در چنجای باق یعنی جای سبزی که به طور مصنوعی به وجود آمد چون باق یعنی جای سبز پربول و درختی که به طور مصنوعی و به دست بشر به وجود آمده باشه چیزی که خود به وجود بیاد که بشه نمیگن باق این باق موازبت و مراقبت نفارد از قدیمترین عدوار در ایران و بین نهرین و این نواهی با ها جهانی داشتن و موازبت های زیاد میکردن دلیلش هم همین بوده که مسافری که توی اون خشکی و توی اون باد و توی اون گرما و توی اون سختی میرسیده به سایه باق این زندگی رو کنید این باق ها بودن شاید سب تا باغ شد وقتی مقاله من نوشتم این شب هم چپ نشدیمی شوید که هم افتاده که جا همین باقمانش هست باق باید بحث کردم که چند تا باق هست که اسماش تو تاریخ ها آمدید بوده که اینا در زندگی افراد نقش اساسی داشتید و همینطوری که جام هست برحال اسمام گرچه صد رود هست در چشمم مدام زنده رود و کاران یاد باد یه بیگه نر شده بود امان. یادم یاد یه باقه که داره حافظ تا سبب باغتون نمیشه اون باغوش یه جاد صدا یه دهن از که در باغ نظر باغ نظر تمنوار او جهان خوشتر از این قنچه یعنی ذهن تو جان جاد صدای دهنت وا که در باغ نظر تمنوار او جهان خوشتر از این قنچه نپست درست یکی از باقه های من الان یادم نیست که در شیراز بودی یا در اسماحان باقه معروف، است. اونان نظر یا آقای نظرنام یا به دلیل دیگری باقه بوده است اونان باقه نظر در غمد حافظ استفاده کرده از این کلمه باقه نظر و در باغ نظر یه هم گفته زنده رو بوده از هشک چشمم زنده رود از عشق چشمم رشک صد چه شد تا به رخصابر تو این باغ نظر افتاد هست من احز کنم که باغ نظرم که از اون باغ ها که حافظم آورده گرچه صد رود هست از چشمم مدام زنده رود و باغ داد با، راز حافظ بعد از این ناگفته مان این چه جور میشه؟ ماند مال خب بسید، تیل مازیه دیگه درسته؟ ماند هم ماندی، ماند، ماند و حال که بعد از این یعنی برای زمان بعد که آقای گرامی هم خوش آقا که ماند حق ولی مانده ولی اما چطور؟ جواب این است که شه سبور همه جوشتان اینجا همه ی دوستان سعادت ازدواج و طالا داشتن هماشون در سیغه زن هاشونی که میخونن بطوکیل میکنن البته پر طرف که اونجا نشسته بیچاره ولی وکیل آقا مثلا میگه که خانم فلا من از طرف موکلم با تو ازدواج کردم خانوم هم میگه من وکیل خانو میگه من قبول کردم انگه تو نکاح کردم تو تزویش کردم زبش تو تزویش کردم اونم میگه قبل تو یعنی قبول کردم چرا دستور که این حتما با سیره ما زیدش برای که مزاره منجز کات. یاد نظره اگه بگم من با تو ازدواج میکنم ممکنه فردا بگم که بله اصلا بود یا یه هوا صاف بشه و با شما ازدواجش کنم یا داستان بارم اومد. ولی وقتی میگم ازدواج کردم دیگه حرف در زبان محاوره وقتی میگم من اینا کردم دو تومن حالا شما به نظرتون میاد که این 300 هم ارزش میگید یا آره من دهتشو خریدم یعنی چی؟ یعنی تو نظیر اینه که بیاد من دهتشو حتماً و قدعاً از تو میخرم اینو بهش میگن استعمال مازی به جای مزاره محقق البقوق استعمال مازی به جای مزاره محقق البقوق تمام سیغه های ازدواج، خرید گروش باید به سیغه ماسی بشه که مربوط بعد از مزارج من خونه رو خریدم یعنی میخرم باید که میگه من به تو فروختم یعنی میفوشد بروخت شد پس حافظ نزیرینو کم نداره در ذهن برای که فکر نکن که همین جاتراز حافظ بعد از این ناغفته بان یعنی نفعاً ناغفته میمانه میگه که پا فضل و عقل بینی بیمحرفت یکی یک نکتا خود را مبین که راستی رستی میرسی اون چیزش دیگه ای دلمبا عاشق دم تاریز عشق اومد دوتا قصد این تورید داره یکی دیگه شما هست چیه آن روز دیده بودم این فتنها که بردها که زمانی با ما نمی از می با مدعی ما گویی دستا و عشق و مستی تا پیخبر بمیرد در درد خود پرستی ضعف و ناتوانی ای مرد نوسته غزل تو اصل شاعر چاو با ضعف و ناتوانی همچون نسیم خوش باش بیماری در این راه خوش باش در تا پس زهر بینی بیماری فقط نشی یک نو شعر بگوییم خود آمد این و راست جو از ذا در نوسته غزنی از خود آمد که راست در هر حال چه مبین رست که مبین که رستی استعمال ما عزیز به جه مزاره محقا بود. این ده راز حافظ بعد از این ناگفته مان دارم همونجوره راز حافظ بعد از این ناگفته مان یعنی حتما ناگفته خواهد مان ای دریقا رازداران یاد با، یعنی رازداران رفتن نیستند. به همین که در نظر، جهان، پوسته را از فرهنگ ها فرهنگ اون اولا دوبا میگه یه وقت کلمه ای در هفت بزن آه یه صورتی شما هم صورت صورتی کاری شما اران بگید شجاعت به جای شجاعت مثلا یا صحابت به جای صحابت گفتهتون میخوندن لزومی نداره که آغاز جلسه ششم درس از حافظ در خدمت استاد بکتر محمد جفر محجوب برکلی هشتم افریل هزار <تصفيق> Good